سعدی پس از این گفتر فرنگ حیثهی که دویست سکه طلا در آنجا داده بود از کنربند خود باز کرده و به من تسلیم نمود و گفت از خدا می که به تو برکت دهد و از این کل بتوانی استفاده درست کنی و ماجبات خوشحالی بیشتری برای خودت و خانواده از سره هم کنی من و سعد بسیار خوشمود خواهیم شد که به توانی بیشتری به کسب و بکار خود بدهی من از این سخابتنانگی سعدی به قطریحه جنزده شده بودم که زبانم برای سپاسگذاری بند آمد و کوشیدم که لبه قبای سعدی را ببوسم. ولی او مانع شد و دست خود را عقب کشید و در یک لحظه همراه رفیق خود سعد از دکان من بیرون رفتند همین که آنها رفتند من به کار خود مشغول شدم ولی همه فکر می کردم این دیویز یه را در کجا پنهان کنم که از دست بود اشخاص محفوظ باشد زیرا در خانه امنا صندوقی داشتم و نه جعبیه که بتوانم با خیال آسوده این پول قابل ملاحظه را نگهداری کنم با این پریشان که پول را در چه محل امنی پنهان کنم از دکان به سیگی خانه رست کار شدم و با احتیاط و دور از چشم زنگ فرزندانم به بهانهٔ آنکه میخواهم دستارم را تغییر دهم دستار از سر برداشتم و بعد از آن ده یه طلا از کیسه بیرون گذاشتم تا برای خرید احتیاجات آنی به بازار بروم و روی عادت مردمی توحید است که پول خود را نابینای دستار خود پنهان میکنند بقیهٔ ها را در لابلای دستارم انجام دادم و آن را بر سر گذاشتم و دوباره از خانه خارج شدم مخوص به بازار رفتم و مقدار زیادی کنف خریدم بعد مدت ها بود گوشت نخورده بودیم به دکان قصابی رفتم و مقداری گوشت خریدم و راه خانه را در پیش گرفتم اکی فاقا گوشت رو که ماماش زغن است و بسیار هم گرسنه بود در بالای سرم پدیدار شد و حمله برد تا گوشت ها را از دستم را باید. من مقبومت کردم و با دستهای خود بسته گوشت جا محکم نگه داشتم ولی زقن مرا رهانه میکرد و با تمام نیروی خود می خوشید. من هم ایست دیگی می کردم در این درگیری شدید دستار از سرم به زمین افتاد و زقن با ننگار نیرومند خود دستار از زمین برداشت و به هوا پرواز کرد من به تمام قدرت خود فریاد می کشیدم همه مردم رفت متوجه متوجهه به بودن دستارم که وسط شده بودند آنها هم فریاد میکشیدند تا شاید منان به بسیاری موارد دیگر پرنده بترسد و منگار خود را باز کند و در نتیجه تعمه و یا آنچه را در منغار دارد رها سازد ولی این بار چنین نشد و پرنده در آسمان ارج گرفت و از نظرها ناپدید شد و دنبال کردن آن هم بیفایده بود من با اندوه زیاد به خانه برگشتم در حالی که هم پولها را از دست داده بودم و هم دستار سرم را و از ده سکه یه تلایی که برای هزینه کنار گذاشته بودم نکتاری کنف خریدم و نکتاری هم برای خرید گوشت پرداخته بودم این کلی برای خرید دستار نو در جیب نداشتم اما آنچه بیش از هر چیز مرا رو میداد این بود که وقتی سعدی مردی میکو کار بعد از سر وقت من بیا و از نتیجه پیشرفت کار و درامت پرسش کند من به او چه پاسخ دهم و آنچه بگویم برایش باور نخواهد بود و تصور خواهد کرد از را به انسانی داده است که شایستگی برای این قبیل سرمویه ها است به این که با خود می من که فقیر بودم و برای چند بحثی خود را سروت احساس کردم با دواره به همان حالات همیشگی که توی دستی بود برگشتم پس خواست خداوند چنین است و حال که با یک وضع من در همین حد باشد باشم؟ باید از وضع موجود لذت ببرم و خود را به خداوندی توانا بسپارم و تسلیم او باشم با چنین به زندگی فقیرانم ادامه دادم و به همسرم شرح این پیشامد را دادم و به هم ها یه به وجود شدن دستارم گفتم و اشاره به اینکه یکصد و نود سکه در لابلای آن بوده است نکردم زیرا آنها که از وضع مالی من آگاه بودند باور نمیکردند و به من میخندیدند ما از این وضعیه گذشت روزی از روزها که در دکان خود مشغول تنبافی بودم متوجه شدم که سعد و سعدی به سوی دکان من می آیند. وقتی وارد دکان شدند سلام تعارف کردند و من هم سوشانت گفتم آنها گفتند در این مصدیکی رد می شدیم گفتیم یادی هم از شما بنماییم انشاءالله که کارها بر وفق مراد پیش می رود زمان علاقه من بودیم که بدانیم ودود دیویست سکه در بهبود کار و آسایش زندگی شما چه اثراتی داشته است سعد به سعدی اظهار داشت ظاهرا تغییراتی پدیدار نگشته و اوضاع همان است که بود فقط دستار حسن نوتر شده است اما لباس و سر او و دکانش مثل سابق است پس از سخنان دو که كه دو مرد بودند به آنها گفتم متأسفانه با اینکه شما دیویست سکهی طلا به من مرحمت کردید آنچه را که من و شماها انتظارش را داشتیم واقع نگردید زیر حادثه ای رخ داد که اساساً برای ما قابل پیش بینی نبود آنگاه ماجرای جرای پرنده گوشت و ربوده بوده شدن و دستار را برای اندو شهر دادم سعدی سخنان مرا باور نکرد و گفت حسن تو نزاه میکنی زیرا آنچه را میگویید و نیست که زغنی دستار تو را برو باید زغنی دنبال گوشت و تونه می رود، با دستار کاری ندارد که از آن دستوافرادی هستی که وقتی بر برحسه اتفاق ثروت کلانی به دست آورند که هرگز انتظارش را ندارند دست است کس وكار برداشته و به تفریح و می میپردازند و این شیوه را انقدر اداره ادامه دهند تا آخرین دینار هم به پایان رسد آن به همان تو هی دسته اول برمیگردند بنابراین نمیتوان تو و امثال تو را نیازمند به شما بلکه بهتر است بگوییم که دارای بگی نیستید تا کسی به شما یاری کند و سرمایه دهد من در پاسخ سخنان سعدی گفتم هرچه مرا فرزنش کنید حق دارید و حتی حاضرم بدتر از آنها را هم بشنوم اما حادثهای که رخ داده واقعیت دارد و گروهی از مردم شاهد آن صحنه در خیابان بودند و در صورت لزوم حاضرند آنچه که كه دیدهاند بازگو کنند من خودم هم تقدر از این بودم زغنی دستار کسی را برو باید اما این اتفاقی است که رخ داده و حقیقت دارد اگرچه معمولاً این اتفاق نمیافتد ولی محل هم نمی باشد سعد در ترفتاری از هم بیاناتی کرد و درباره کارهای عجیدی که زغن در دستی‌های خود می‌کند، کند تعریف کرد و سرانجام دویست سکه طلا از زیر پیراهن خود بیرون آورد و در دست من گذاشت و گفت. این را بگیر و ناراحت نباش. سعدی هم پس از آن سخنان 200 سکه طلای دیگر شمرد و در دست من گذاشت و گفت این بار پول‌ها را در محل امنتری پنهان کن و سعی کن بهجا جا و درست از آن بکنی که در بهبود زندگی و کارت اثر بیشتری داشته باشد. من از هردوی آنها تشکر کردم و گفتم حتماً سکه ها را در جای مطمئن خواهم گذاشت. سعدی و ساعت از خدا حافظی کرده و از دکان خارج شدند. وقتی آن مرا ترک کردند، من هم کار را تعطیل کرده به خانه آمدم و در جستجوی محل مطمئنی برای پنهان کردن و سکه ها بودم. بالاخره خنده‌ای پیدا کردم که در ته آن سبوس سبز شده بودند. من هم سکه ها را در یک پارچه تمیزی پیچیدم و آن را زیر زدم و در کنار سبوس ها در ته خمره جای دادم. و چون احتیاج به داشتم، به بازار رفتن تا مقدار کنف تهیه کنن در نبودن من در خانه دورگردی که ماسه برای پاک کردن زروف می در کوچه صدا می کرده. و همسر من که احتیاج به ماسه داشته او را صدا میزند. و چون پول نقد نداشته دورگرد حاضر می شود را به سبوس مبادله کند و همسر من از همه جا بیخبر خونده سبوس را که من سکه ها را آن تنخان کرده بودم به دورگرد می دهد. و در مقابل آن مقداری ماسه برای شستن ظروف از او میگیرد طولی نکشید که من به خانه برگشتم و پنج بار کنف ها را به خانه آوردند و اجت آنها را دادم و رفتند سپس روی زمین نشستمد و به اطراف نگاه کردم و اثری از خنده سبوس ندیدم ناگهان قلبا از نبودن خونده سبوس فروریخت و سراسیمه از همسرم پرسیدم بر سر این خونده چه آمده همسرم با خوشحالی پاسخ که در خانه نبودی فروش روش درگرد از اینجا عبور میکرد من ماسه نزم داشتم و پول هم نداشتم درگرد رو دازی کردم به جای پول سبوس قبول کند و بدون پرداخت پول مصفه مورد نیاز را به دست آوردم وقتی همسرم گفت که خونده یه سبوس رو از دست داده فریاد کردم ای زن خانه را خراب کردی تو تنها سبوس به درگرد ندادی؟ بلكه های طلا هم همراه آن به مرد دورگرد ای این که بود که برای دومین بار سعد و سعدی به من داده بودند تا گشایشی در كار کسب خود تدید آورم و فعالیت بیشتری بنمایم که با این ترتیب آن دورگرد ناشناس را به ثروت رساندی و زندگی خودت و بچه هایت را تباه ساختی همسرا با شنیدان بسه های من بر سر رویش کوبید و سراتش را چند زد و خداوند مرد برای خود آرزو کرد آن وقت به من گفت من بیخبر بودم که در داران خون و چنین پولی پنهان کرده ای, ای کاش به من گفته بودی آنقدر گریه و کرد که بالاخره گفتم بیتابی و سرزنش بیفایده است در مورد های طلا در نوبت اول آن برای آسمانی به سر من آمد و در مورد های بار دوم هم بیخبری تو سببه از دست دادن آن گردید اما قصه نخورد قسمت چنین بوده است زیرا بدون اراده من این پول به دست من رسید و بدون خواست من هم را از دست دادم چه خواست پرونده پروردگار باشد همان می شود به همسرم گفتم این مورد سخنی با همسایگان نبود زیرا آنها به جایی تا خوردن خواهند خندید و باید فعلا به خداوند پناه ببریم و خوشمید باشیم که اولا دست که در اختیار داریم من نمیخواهم خواهم با بایدین سردزشت خود خلیفه سر را خسته کنم ولی به هر حال همسرم را قانع ساختم سر نخورد و در کمال آرامش این دو بزرگ را بر خود هموار ساختیم اما موضوع دشوار برای من آن بود که این مرتبه از چند ساله نمیتوانستم به صورت سعدی نگاه کنم. زیرا حتما او این دقیقه اتفاقی را باور نمیکرد دروست دو یغانه و یک دل هنوز برای آگاهی از نتیجه های کسبی من نزد من نیومده بودند و تصور میکردند هرقدر دیتر به رقم بیایند وضع مالی من بهتر خواهد بود و به بهبود کلی در امور کسبی و خانوادگی حاصل خواهد گردید و در نتیجه من شخصا خشنودی بیشتری نشان خواهم داد سعد که درباره سخاوتمندی سعدی و نتیجه آن برای زندگی من نظر متفاوتی با سعدی داشت میگفت تو انتظار داری سکته هایی را که به حسن هدیه کرده ای وضع زندگی او را بهتر و او را ثروتمند سوزد در حالی که زندگی چنین نیست و چه بسای که وضع زندگی حسن از زمان گذشته هم بتر شد بنابراین به خودت درخوشی نده که با محبت و سخاوتی که به حسن کرده ای حتما نتیجه مورد این حاصل خواهد شد. و سعدی پاسک میداد که چرا این عقیده را داری هر روز که زغن دفتار حسن را نمی به این بار حسن با احتیاط بیشتری از کل خود نگهداری خواهد کرد سعد در کسخ سعدی گفت: من به خالفتی باتنه می ولی رسم دوزوار بر این است که قلبن انتظارات آدمی انگونه که پیش بینی برآورده براوردنه می شود و الاد همان است که ازاملی در نتیجه اند مداخله می که ما از آنها آگاهی نداریم و نتیجهی که حسن می خلاف انتظار در میگذ. پس از مدتها در یکی از روزها سعدی و سعد یک دیگر به اتفاق یکدیگر به دکان من آمدند و با مهربانی از حال من جویا شدند من هم به آنها خوشامد گفتم و احترام کردم وقتی از کارشان سر من پرسیدند به آنها پاسخ دادم من همچنان منند زمانهای گذشته با توهیدستی روزگار میگذرانم و گشایشی در امور زندگی و اوضاع مالی پیش نیامده است و پیشامد ناگزار دوم را برای آنها شرح دادم بعد از ها گفتم شاید شما بگیید به هردو که من سکه هایم را در جای دیگری غیر از سبوس نگهداری میکردم. اما این خونده سالیان سال در همان محل جای داشت و در آن هم روز همسر من به شراق آن می رود. از زنبرین آیا می توانستم پیش بینی که در همان روز ماسه فروش و جایی از کوچه من گذر خواهد کرد و همسر من هم که احتیاج به ماسه داشته و بدون پول هم بوده سبوس را به خواهد کرد. را ممکن است بگویید بهتر بود من به محسررم گفته بودم سکه ها را کجا گذاشتم؟ ان خود خودش به من نمی گفتفتی که ممنته بی دییتی در دا جهداری سکه شده بودم. و اگر سکه ها را در جای دیگری غیر از آن پنهان کرده بودم چه مینا داشتم که آنجا محل انتری خوانبهسبوس بود. به هر حال دوستکنه بزرگوار من به رضای خداوند روزی باشید که من هم راضیم که از راههایدوننووم که بر ما معلوم نیست، سعدیزش به مرا به وجود میآورد. آورد من دستخابتمندی شما صحبتمند نخواهم شد و اگر به حکم سنوشت باید مرد که دستی باشم اینگونه محبتها محبت ها و از و زندگی مرا تعدیبی نخواهد داد بعد سخنان من سعدی پاسخ داد من از اینکه چهار ستیه طلا در خیارتو گذاشتام هیچمون احساس نراحتی نمی کنم میدانم که از بندفتن این سکهها. در نتیجهٔ ولخرجی و یا استفادهٔ غیردرست تو از آن بوده است من این پول را به وست کمک به دادم برای خوشنودی خدا بدون آنکه انتظار پاداش داشته باشم اما چیزی که سبب پشیمانی من نشود آن است که چرا این پول را در اختیار کسی نگذاشتم که بتواند از آن به نهوه بهره من گردد در این هنگام ساعت به سخن درآمد و گفت رفیق با پول دادم که به حسن یا شخص دیگر کسی ثروتمند نخواهد شد و همان که در اول گفتم شخص با توکل به خدا اگر قرار است ثروتمند شود عوامل دیگری هستند که برای ما قابل پیشبینی نیستند و آن عوامل سبب ثروتمند شدن و خوشبختی ما خواهند گردید آن وقت سعد که چشمی عجیب خود در آورد و اندرو به من داد من هم تشکر کردم و با وجودی که به درد کاری نمیخورد آن را در جیب خود گذاشتم و از او تشکر کردم و پس از رفتن آنها دوباره به کار خود مشغور شدم هنگام شب وقتی میخواستم لباس خود را قبل از رفتن به بستر درآورم تکه سرب به لباسم روی زمین افتاد و آن را برداشتم و در نزدیکترین محل به بستر گذاشتم اتفاقا در همان شب ماهیگیری که از همسایگان ما بود میخواست دام ماهیگیری خود را تعمیر کند. و رواز شدید به قطع اصر که به متصل سازد چند از در همان شب به شکار ماهی نمیرفت رفت سردای شب برای یک کردن خود نداشتند و دکان‌ها هم در آن موقع شب همی بسته بودند ناچار ماهیگیر همسر خود را به خانه یک کلیه یک ساکنین دو طرف خیابان فرستاد، داد تا شایید همسایی قطع اصر باشد و به او بدهد که بتواند شبانه به ماهیگیری رود. متاسفانه همسر ماهیگیر دست خالی گردد و شوهر به او میگوید به خانه حسن تنباز هم برو همسر ماهیگیر دل‌لنگون چکش خانه مرا به سر درآورد آورد و مرا از خواب سنگین بیدار کرد از او پرسیدم این وقت شب برای چه کاری به اینجا آمدی پاسخ داد شوهرم به کسور برای دان ماهیگیری خود احتیاج دارد و همه دکان‌ها هم بسته اگر این ککسور را به من بدهی من و شوهرم یک دنیا از شما ممنون خواهیم شد وقتی درخواست همسر ماهیگیر را شنیدم فورا به بیفتادم که سعد به من داده بود و به همسرم گفتم که ککهسور را به همسر ماهیگیر بدهد او هم به همین ترتیب رفتار کرد و همسر ماهیگیر بسیار خوشحال شد و گفت در برابر این مهربانی نخستین ماهیی که به دام شوهرم بیفتد متعلق به شما خواهد بود ماهیگی که توان نمی یافت شب سربی پیدا کند بسیار خوشحال شد و دانش شد تعمید کرد و به خوشیدی حس همسرش او تایید نمود اتفاقا نخستین شکاری که در دامن افتاد ماهی درشت و بزرگی بود وقتی زود از دریا به خانه برگشت اول به سراغ من آمد و ماهی بزرگی را برای من آورد و گفت من همسرم به قول خود وفا کردیم و نخستین ماهی را برای شما آوردیم. و تقاضا این حدیه یه مقابل را قبول کنید و خداوند ماهی‌های بسیاری در این ماهیگیری نصیب من کرده است من از خریش ماهی و هم از هم در مقابل تکیه صورت مقابل خود داری می کردم. ولی همشه من گفت این یک کسی صورت سبب شد که بتوانم ماهیگیری کنم و اگر دسترسی به صورت نداشتم یه می توانستم را تعمیر و آماده کنم به علاوه من شندین برابر هر روز و بزرگترین آنها را هم برای شما آوردم. به هر حال منم را گرفتم و به همسرم نشان دادم و گفتم این ماهی به این بزرگی را در وقت سعب به ما داده است زیرا این ماهی نسیجه جای کسی است که او به من داد همسرم گفت ما به حال ماهی به این بزرگی ندیده بودیم و ظرف ما فقط برای ماهی های و کوچک مناسب است این را چگونه باید کباب کنم من با کنم این به خود توست. من با یاد به دکان بروم در موقع پاکردن کردن ماهی یک قطع الماس بزرگ در شکن ماهی دیده می‌شود و همسر من که تا موقع الماس را ندیده بود نمیفهمید که این شیء شفاف و درخشنده الماس است و به تصور اینکه شیشه است آن به عنوان بازیچه به بچهها میدهد و بچه ها هم آن را دست به دست میگردانند و با آن بازی کنند و زیبایی و درخشندگی آن برای آنها چشمگیر بوده است بهخصوص هنگام شک این الماس درست با نور خود اتاق را کاملا روشن می‌کرد و بچهها بشتر الماس با یکدیگر به بازی ورا بودن از دست هم میپرداختند بعد از شان بچهها دععواشم شد الوت را پرسیدم خاطر بهخاطر همان همین ظاهرا چه است که از درون شکم ماهی بزرگ پیدا شده بود من و همسرم خیال میکردیم قطعهای از شیشه است تا آنکه به دستور من چراغ را از اتاق بیرون بردند و در توریکی و تلعلع آن کاملا پدیدار شد من به گفتم یکی دیگر از مزایای این شیشه آن است که به جای چراغ باشد از آن استفاده کنیم و پول روغن برای چراغ را صرفهجویی کنیم و در واقع سعد را سبب این صرفهجویی که نوعی مالی بود میدانستیم شب را مخوابیدیم و قعدا صبح مانند روز به محل کار خود رفتم و منا همسرم اساسا توجهی به آن بازیچه شیشهای نداشتیم از سوی دیگر چون دیوار به دیوار نوجواه فروش یهودی سوتمندی با همسرش زندگی میکرد در همان روز صبح که من به دکان رفته بودم نز به همسر من میآید و از سر وصدای شب گذشته شکایت میکند و سبب آن را از همسر من میپرسد همسر من همروی صادگی بازیچه شیشهای را به او نشان میدهد و میگوید به خاطر این شیشه که اتاق رو روشن می کند بچه ها به نبت با آن می کردند و صدا راه بودند زن یهودی فورا متوجه می شود که آن شیشه الماس است و به بازار زرگرها به دکان شوهرش می بود و را به او می و توضیح می دهد که الماس بدون وجه است و از درخشندگی آن تعریف می کند شوهر به او می گوید بیست سکن طلا آن خریداری کند و زن یهودی هم بیست سکی یه به همسر من پیشنهاد می کند همسر من که بیست سکی یه تلا را مبلغ بسیاری می دانسته من باید با شوهرم صحبت کنم زیرا این شیشه مال اوست وقتی هنگاه نوزه از دکان به خانه رسیدم زن یهودی را در آسانی در خانه اندیدم که با همسرم مشغول صحبت است و بیست سکی یه را برای الماس پیشنهاد کرد ولی من که در این ندادم. او به خیال آنکه مبلغ کافی نیست قیمت را به پنجاه سکهٔ طلا افزایش داد همینکه متوجه شدم زن یهودی قیمت را به پنجاه سکهٔ طلا افزایش داد به او گفتم قیمت این شیشه خیلی بالاتر از اینهاش زن یهودی گفت سد سکهٔ طلا حاضرم بدهم من گفتم نه او گفت اگر بیش از این بدهم همسر مرا دعوا خواهد کرد من به زن یهودی گفتم قیمت این شیشه یکصد هزار سکهٔ طلا است و تازه بخاطر اینکه همسایه من هستی به شما تخفیف دادهام وگرنه این از ششه های کمیاب و بیمانند است که قیمت آن خیلی بیشتر از این هاست. سرانگان تاجر یهودی درباره تعیین میزان قیمت الماس به منزلم آمد و مدتی با من گفته کرد و عاقبت از ترس آنکه مزاد من الماس را به جواهرسازان دیگر ارائه دهم با قیمت پیشنهادی من به یک ست هزار سکه طلا موافقت کرد و رقدن دو هزار سکه که همراه داشت به من داد و بقیه آن را فردا تهیه کرد و پرداخت و در مقابل من الماس را در اختیارش گذاشتم بعد از فرختن الماس نخستینگام آن بود كه لباسهای گرانبها برای همسر و فرزندانم خریداری کردم و بعد هم خانهٔ خوبی تهیه و به بهترین وجهی با اساسیه و لوازن زندگی آن را آراستن و بقیه پول را دست نزدن و چه نم که انواع بناگون و ها را میباستم یافتم و به آنها گفتم مزد میدهم بدهم و شماها برای من تنبافی کنید و استعدادهای خود را در های مختلف این رشته از بافندگی ارائه دهید و به آنها وعده کردم همین که محصول کار خود را به من تحویل دهم فوراً اوجت آنها را نقداً پرداخت کنم و هرگز در ان جزره وعده دریافت جز در جز پول به سر نبرند با من سری توانستم کلیه تنبافی‌های شهر بزرگ بغداد را در اختیار خود گیرم و قیمت فروش این کالا را در بازار بغداد به خود انحصار دهم و همه دست‌اندرکاران این رشته هم از صنعت از ذهنی پرداخت و پول من کاملاً خوشنود بودند و در واقع تناب در اختیار من به تنهایی قرار گرفت. چون تمام کارگران تنباف باید محصول بسیاری از تناب به وجود آورند ما در چند محله شهر انبارهای متعددی ترازی کردم تا تنوپای شده را در آن انبارها نگهداری کنم و برای هر کدام از آنها منشی حسابدار جداگانه و سیستم انبارداری ترتیب دادم تا به طور و خریدی و جزئی را دریافت و انجام دهند و ارقام درآمد و هزینه را در دفاتر بازرگانی مخصوص ثبت و نگهداری کنند و با این شویه درست اقتصادی از لحظ تولید تناب و تخشو اندارداری آن درآمد سرشاری سرشوری به دست دارم و تمام تقوضه ی تناب شهر بکتر و سایر نگاه من انجام می دادم پس از مدیسی تمام اندارهای خدا در این منطقه نتمنطق ساختم و خانه بسیار بزرگی با قضای بسیار وسیعی خریداری کردم صبح ساختمان انداخرار کردم و بنای با با معماری تازه برپا کردم و این همان بنایی است که خلیفه به آن توجه کرده اند و قسمتی از آن محل مسکونی است و قسمت عمده پشت ساختمان انبارهای گوناگون قرار گرفتهاند که بعد از اینکه خانه محقر قدیمی خود را ترک و به بنای جدید انتقال یافتم سعد و سعدی به دیدن من آمدند و از ترقی و ثروت من ورنق بازرگانی و زندگی اعیانی من در شگفت شدند و هنگامی که فهمیدند من بازرگان مشهور و معتبر شده‌ام و مرا حسن تاجر منحصر به تنود بر شهرت آنها افزوده شد خصوصاً که قصد به مرا که در آنجا زندگی میکنم دیدند نکوت ماندند بدانها گفتند که تمام این ثروت در اثر همان یک تصوبت که سعد به من داده بود دو دوستانۀ فامیلیه یعنی سعی و سعدی به هیچ چیز می کردند سعدی گفت از طرقی و زندگی اشرافی هستند که بزرگان مشهوری شده است، بسیار خوشحال هستم. اما در این حال دروغ بزرگ او را راجع به چندان سکه ها هرگز نمی بخشم و کسی نمی تواند باور کند که این ثروت را از همان که سر به دست آورده باشد. به هر حال آن دو نشانی قصد مرا گرفتند تا بعداً بازدیری از آن به عمل آورند. سعد در پاسخ سعدی گفت این ادنانی نیست که تو حسن در دروغو خطاب کنی آنچه را که او تا خونم با منو تو گفته این حقیقت بوده است و تردیبی ندارم که تمام هی ثروت و زندگی و تو داره در سر همان یک تسساب به وجود آمده است و تو دیر یا زود، از دهان خود حسن سعدیزش یک تسساب به خواهی شنید با ایدانه چنین گفتگوی سعدی و سعد به در قصد من میرسند و در میزنند و در دا لباس مخصوص در قصد را میگشاید. وقتی آنها سکوخ و اشرافی بودن قصد را می بینند. از دربان اوش خواهی می کنند. و میگویند ما دنبال خانه ی حسن میگردیم و اشتباه هم اینجا را دردادیم دربان می میگوید قصد حسن تندباه با زرگان هم اینجا می باشد با و آنگاه گلمان آنها را راهنمایی میکنند و به تالار پذیرایی میبرند من فاران به دیدان آنها آمدم و خواستم گوشه غبای آنها را ببوسم ولی منع شدند و مرا رو در آغوش گرفتند سپس روی مبلی که از آنجا صحنه و فضای باغ دیده میشد نشستند و به آنها گفتم من هنوز همان حسن, حسن تناباو هستم و مهربانی و یاری شما دوستان نیکوكار را فراموش نکردم سپس سعدی خطاب به حسن گفت از اینکه تو را در این موقعیت و موفقیت می‌بینم نهایت خوشحالی می را دارم و بدون آنکه قصد سرزنش از داشته باشم میخواهم بپرسم چه در مورد افتخارهایی که طلا گفتی به هر حال فرارشه که از محور های طلا به زندگی و ثروت فراوان دست یافتید و مرحله‌ی بینیازی رسیدی در این نقش سعد به سعدی گفت یا داش نمی سخن را حقت کنم اما نوتورم بگویم که بوجهت هستم یا در این در حالی که آنچه برای من تو شهر داده عین واقعیت بوده است و حالا هم می میکنم دو اتفاقی که سکه ها رخ داده است درست بوده و واقعا چنین ای رخ داده است ولی بهونسا خود حسن بگوید هرف کدام که از مدو از صحیح است پس از سخنان سعد من خطر به هر گفتم من نمیخواهم کمترین اختلافی بین دوستی شما پدید و اگر از من نمیخواستید كه تذیز هم در سکوت باقی میماندم اما اینا به تقویز شماها شرح واقعه را بیان می کنم ان وقت من جریان یافتن الماس در شکم ماهی و فروختن آن را با دو وقعی مربوط به زغن و رو بودان و مبادله خمره سبوس را با ماسه با ماسه فروش دورگرد شرح دادم سعدی بعد از شنیدن شرح ماجراها به من گفت من هیچ خودم از این وقایع را باور نمی کنم. ولی در هر حال خوشحالم که آقابت خوب و سعادتمندی پیدا کردی و این همان چیزی است که برای تو آرزو داشتم اما این خوشبختی بر اثر من شدن از آن سکه های است که در دو وحل ما به تو دادیم وقتی شب فرا رسید و آنها خواستند با من خداحافظی کنند و به خانه های خود برگردند از ایشان خواهش کردم که شام را میهمان من باشند و شب را در خانه من بگذرانند تا فردا فضل...